سلام، به فصل سوم پادکست علف خوش اومدید شما قسمت بیست و یکم پادکست علف اولین قسمت فصل سوم رو میشنوید هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نام است خیلی خوشحالیم از اینکه تونستیم فصل جدیدی از پادکست الف رو شروع کنیم و در ماهای آینده طبق روال سابق پادکست در روزهای اول هر ماه میلادی یک اپیزود جدید منتشر خواهیم کرد من واقعا به این افتخار می‌کنم که تو این چند ماه فاصله ای که بین این دو فصل افتاد کلی آدم پیام دادن کامنت گذاشتند و درباره قسمت جدید و وضعیت پادکست سوال می‌کردند امیدوارم بتونم با همکاری کسانی که کمک میکنن در پخش این پادکست اپیزودها ها رو سر وقت و با کیفیتی که مد نظرم هست منتشر کنم و شرمنده این همه لطفی که به من و این پادکست دارید نشم شما میتونید برای حمایت از این پادکست و بالا رفتن کیفیتش از پادکست حمایت مالی کنید مبلغش واقعا مهم نیست این حمایت ها علاوه بر کمک مادی که به روند تولید پادکست میکنه، یک دلگرمی معنوی هم محسوب میشه که انگیزه من رو برای کار کردن بالا میبره. برای تشکر از کسانی که از ما حمایت مالی میکنند، اپیزودهای جدید یک روز زودتر از پخش عمومی برشون ارسال خواهد شد که این کمترین کاریه که ما میتونیم در جواب لطف و محبت شما انجام بدیم. البته این نکته رو حتما میدونید و دوباره تأکید میکنم که شنیدن این پادکست همیشه رایگان بوده و خواهد بود. همین که ما رو میشنوید و به دوستانتون معرفی میکنید خودش برای ما کلی ارزشمند. برای آگاهی از پخش اپیزودهای جدید و نمایشنامه که قرار در آینده بشنوید و دیدن محتوایی که در کنار پادکست تولید میکنیم میتونید اینستاگرام علف رو دنبال کنید و اگر حرفی، نظری، نقدی هم داشتید به صورت مستقیم با من در میون بذارید نمایشنامه قسمت اول این فصل یکی از مهمترین نمایشنامه های تاریخ تئاتر. کرگدن اثر اوژن یونسکو که ما ترجمه پری سابری از نشر قطره رو برای روایت این اپیزود انتخاب کردیم و متن رو هم فاطمه یسنان نظری پور قدیمی ترین همکار من در پادکست علف نوشته کاری تدوین اپیزود رو هم شکیبا اصدی انجام داده از این بچه ها خیلی ممنونم که کنار من هستن یه معرفی کوتاه از یونسکو داشته باشیم بعد بریم سراغ نمایش نامه اوژن یونسکو در سال 1909 در رومانی به دنیا میاد البته تلفظ صحیح اسمش به زبان رومانیایی یوجن یونسکوه پدرش اهل رومانی بود ولی مادرش زنی فرانسوی بود که در نهایت ازدواجشون به جدایی کشیده میشه یونسکو بیشتر دوران کودکیش رو در فرانسه گذاروند و به ادعای خودش اون دوران جزی از بهترین روزهای زندگیش بوده طوری که وقتی میخواد بهشت رو در نمایشنامهاش به تصویر بکشه از خاطرات اون دورانش کمک میگیره خودش میگه تجربیاتی که اون سالها به دست آورده، خصوصا سه سالی که در یکی از روستاهای فرانسه زندگی میکرده روی درکش از جهان بیشتر از هر چیزی تثیر گذار بوده اما متاسفانه وقتی 16 سالش بوده جنگ میشه و به خاطر شروع جنگ جهانی اول همراه پدرش که به تازگی از مادرش جدا شده به کشور رومانی برمیگرده. از اون موقع دوران سخت و تاریک زندگیش شروع میشه. ظاهرا پدرش هم مرد مستبدی بوده که طرفدار فاشیست بوده. یونسکو سه سال بعد یعنی در 19 سالگی وارد رشته ادبیات فرانسه میشه و بعد از حدود پنج سال به عنوان مدرس فرانسه مشغوله به کار میشه بیست ساله که بود با دختری رومانیایی ازدواج میکنه که برعکس ازدواج پدر و مادرش ازدواج موفقی عذاب در میاد و حتی یونسکو تأیید میکنه که بدون وجود همسرش هیچ وقت نمیتونست نمایشنامه نویس بشه با به پایان رسیدن جنگ جهانی دوم یونسکو کول بارش رو میبنده و دوباره به جایی که خودش اون رو وطن واقعیش میدونه یعنی فرانسه برمیگرده و تا پایان عمر با همسرش و دخترش اونجا زندگی میکنه در مصاحبه‌ای که سال 1353 شمسی در سفرش به ایران با رادیو تلویزیون ملی داشت که در نسخه نشر قطره نمایشنامه هم چاپ شده این مصاحبه میگه با ادبیات در ده سالگی آشنا میشه و با نوشتن انشای مدرسه لذت نوشتن رو کشف میکنه بعدتر هم قصه ای از فلوبر به نام قلب ساده رو میخونه که باعث میشه ادبیات رو بهتر درک کنه و بفهمه چیزی که در ادبیات مهمه قصه نیست بلکه شیوهی روایت قصه است. از دوازده سالگیش به طور دائم مینوشته و با این کار بیشتر در جستجوی خودش و جوهر درونیش بوده تا به جواب سوالاتش برسه که کی هست و چرا هست. یونسکو خودش هیچ وقت نام تئاتر ابزورد رو که مارتین اسلین منتقد انگلیسی روی نمایش دامه هاش گذاشته بود قبول نداشت و می گفت تاعتر من بیشتر تئاتر شگفتیه تا ابزورد و طبعا اگر در تاریخ دیگری نوشته میشد اسم متفاوتی هم به خودش می گرفت با این حال عقیده داشت که بیهودگی که ما در جهان شاهدش هستیم از سر کمبود، ناتوانی و محدودیت ادراکمونه و بعدها به همه چیز آگاهی پیدا خواهیم کرد یونسکو اولین نمایشنامهش به نام آوازخان کچل یا تو ایران به آوازخان تاس میشناسنش رو در سال 1948 یعنی در 39 سالگیش نوشت که هم نمایشنامه خیلی جالبیه هم داستان نوشتنش خیلی جالبه که ما ازش میگذریم اما از اون به بعد مسیر ترقی رو با سرعت بیشتری طی کرد در طول سالهای مختلف برنده چندین جایزه معتبر میشه و بعدها با وجود رومانیایی بودنش حتی به عضویت فرهنگستان فرانسه که وزیفش ترویج و مراقبت از زبان فرانسه است در میاد جالب اینجاست که نمایش نامی کرگدن به نوعی در نکوهش فاشیسم و نازیسم هم هست چیزی که شاید ریشه در جوانی یونسکو تجربیاتش و ارتباطش با پدرش داره. اولین بار نمایش دامه در آلمان بعد از نازیها اجرا میشه و آلمانی ها هم تصدیق می کنند که تصویر خودشون رو در این نمایش داده می بینند. سعی می کنیم در شبکه های اجتماعی بیشتر به یونسکو و آثارش بپردازیم، اما برای الان به نظرم کافیه. بریم سراغ اولین نمایشنامه این فصل سوم پادکست الف کرگدن اثر اوژن یونسکو در صحنه نمایش میدان شهر کوچکی برپاست یه خونه دو طبقه در ته صحنه است طبقه پایینش بقالیه برج یک کلیسا از پشت خونه بقال مشخصه ای بین بقالی و سمت راست صحنه قرار داره و همینطور نمای مایل یک کافه رو میشه دید بالا یک کافه یه, یه خونه است با یه پنجره جلوی کافه توی پیاده رو چند تا سندلی چیدند، همون نزدیکی یه درخت خاک گرفته، آسمون آبی، نور خیره کننده و دیوارای سفید هست. صبح روز یک شنبه و اول تابستونه. نزدیک ظهر صدای زنگ کلیسا قبل از بالا رفتن پرده نمایش شنیده میشه. زنی که یه سبد خالی زیر بغل و گربه زیر بغل دیگشت داره صحنه رو از راست به چپ طی میکنه صدای زن بقال شنیده میشه که شاکی چرا اون زن دیگه از اونا خرید نمیکنه ژان و برژه یکی از راست و دیگری از سمت چپ صحنه پیداشون میشه ژان کاملا مرتب و تمیزه کلاه قهوه‌ای روی سرشه و کت و شلوار قهوه‌ای به تنش داره با کراوات قرمز و یقه آهاری صورتش برافروخته است و کفش‌هاش زرد رنگ و واکس خورده برانجه ما برعکس جان کلاهی سرش نداره ریشش نتراشیده است و موهای ژولیده داره و در کل کاملا نامرتبه خسته به نظر میاد ژان از برانژه شاکیه که چرا دیر کرده و هرچند خودشم همزمان با برانژه رسیده میگه من دوست ندارم انتظار بکشم چون که میدونم تو هیچ وقت سر ساعت نمیای منم هم همون حدودی میام که حث میزنم تو پیدا میشه ژان حرفاشو ادامه میده و میگه که اوضاع برانژه خیلی خرابه از خستگی داره پس میافته و از زور خواب داره می میره و بوی گند الکول میده. برانجه تایید میکنه و میگه حتی موهای سرش هم درد میکنه. جام میگه صبحای یک شنبه همیشه همین بساته. روزای دیه هفته که به کنار. کرواتت کو تو سیاه مستی؟ گمش کردی؟ برانجه دست میبره به یقش و از خودش میپرسه که باش چی کار کرده. جان دست میبره توی جیپ‌هاش و یک راوات پیدا میکنه و میده دست برانژه. البته با یه شونه و یه آینه. ولی اوضاع برانژه داغون از این حرف که با یه شونه زدن و بستن ایک بتونه مرتب بشه. جان میگه افتضاح افتضاح، حتی از اینکه که دوست تو هستم خجالت میکشم. برانژه میگه تو دیگه خیلی داری سخت میگیری. گوش کن جان، من هیچ تفریحی ندارم. خب آدم تو این شهر حسلش سر میره. من برای شغلی که دارم ساخته نشدم. هر روزه داره. اونم هشت ساعت تموم. شبهای شنبه دیگه اینقدر خستم. خودت میدونی که برای اینکه خستگی از تنم در بره جا میپره وسط حرف برانجه و میگه که خودشم سالی بیست و یک روز بیشتر تعطیلی نداره. ولی ارزشش به یه آدم از برانژه بیشتره و فقط یکم اراده لازمه البته برای مثل اون بودن برانژه میگه که همه که اراده تو رو ندارن من یکی به اینجور زندگی عادت نمیکنم. میگه همه مردم باید عادت کنن مگه خون تو از اونای دیگه رنگی مرد برتر کسیه که وزیفشو انجام میده ژان و برانجه همچنان گرم صحبتن که یهو صدای عجیبی شنیده میشه صدای هن و هن یه جونور وحشی صدای چارنل دویدنش اول از دور و بعد نزدیک و نزدیکتر شنیده میشه برانجه برعکس ژان و بقیه که از شنیدن چنین صدای بلندی سرگردونند عین خیالش هم نیست و همچنان خونسرد سر جاش نشسته و درباره دعوت شدن دیشبش حرف میزنه. ولی سر و صدا اونقدر زیاد میشه که صدای برانجه هم دیگه به گوش نمیرسه. جان از جاش بلند میشه و سمت چپ رو نگاه میکنه و با دستش اشاره میکنه به چیزی که همگی ناباورانه بهش زل زدند. یک وسط شهر سرش انداخته پایین و تو پیاده رو ها رو می کنه و جلو میره. خانم خونه دار که از ترس به سرعت تا وسط صحنه داش میدوید سبدی که در دست داشت از دستش می افته و آزوغش پراکنده میشه. بطری گرون قیمت شرابش هم میشکنه. اما گربه‌ای که در بغلش گرفته یک لحظه هم رها نمی‌کنه. صدای دویدن استرابالود مردم و گرد و قباری که حرکت حیوان ایجاد کرده به داخل صحنه میاد. سر و صدای کرگدن با همون سرعتی که اومده بود میره. همه ایستادن و دور شدنش رو نگاه می‌کنند و با حیرت می‌پرسند که این دیگه از کجا پیدا شد جز برانژه که بی تفاوت نشسته و به جان میگه فکر میکنم کرگدم بود چه گرد و خاکی کرد و دماغش رو با دستمال میگیره آقایی که کت سفید کلاهی شیک و اسایی از آج داره به تازگی وارد صحنه شده و به خانوم خوندار کمک میکنه آزوقش رو جمع کنه. و بعد دوستش منطقدان رو که کلاه و عینکی به چشم داره به خانم خونه دار معرفی میکنه. زن بقال که در ابتدا از خانم خونه دار شاکی شده بود که دیگه ازشون خرید نمیکنه به شوهرش میگه که حقش بود همچین بلایی سرش بیاد و بعد یه بطری شراب که شیشش نشکنه براش میبرن پولش رو میگیرن و بهش توصیه میکنند که بهتر از خودشون خرید کنه تا مجبور نشه از کوچرت بشه آقای پیر از خانوم دار میخواد که همراهیش کنه اما خانوم دار میگه دفعی بعد چون الان شوهرش منتظرشه و آقای پیر هم قبول میکنه خانم خونه دار از سمت چپ خارج میشه ولی آقای پیر چشمش هنوز دنبالشه که منطقدان میگه میخواد براش قیاس منطقی رو معنی کنه و میگه که قیاس منطقی عبارت است از تصور و تصدیق و نتیجه بعد هر دو از صحنه خارج میشن جان و برانژه مشغول صحبتند. ژان چیزی رو که دیده باور نمی کنه و میگه که عجیب یک کرگدن راست راست وسط شهر بچرخه. این به نظرت عجیب نمیاد. نباید بذاریم همچین اتفاقی بیفته. برانژه چیزی نمیگه. فقط یه خمیازه میکشه. جان ادامه میده میگه باید به مقامات شهرداری اعتراض کرد. از این مقامات به چه دردی میخورن؟ برانج دوباره خمیازه میکشه و چون که امروز چندان روبه راه نیست دلایل چنان غیر منطقی از این که کرگدن از کجا سرکلش سر پیدا شده میاره که کم کم نزدیک جان از کوره در بره بحثشون همینطور بالا میگیره تا وقتی که برانج کوتاه میاد و میگه یه کرگدن نه تنها نباید آزاد باشه که همچین چیزی اصلا نباید وجود داشته باشه. ولی این دلیل نمیشه که سر این جونه بر با من جر و بحث کنیم. آدم که فکر خودش رو مشغول حیوانی که اصلا وجود نداره نمیکنه. از یه چیز دیگه حرف بزنیم. حرف که قهد نیست. و بعد گیلاسش رو بر داره و به سلامتی جان می نوشه. منطقدان و آقای پیر صحبت کنان میرند و پشت یکی از میزها میشینند. دیزی که منشی اداره است از راست به چپ توی صحنه عبور میکنه. برانجه که با دیدنش جا میخوره یک دفعه از جاش بلند میشه. گیلاسش از دستش میفته و شلوار جان رو کسیف میکنه. صدای جان دوباره در میاد. برانجه نمیخواست دیزی اون رو با این حال و روز ببینه دیزی تو همون ادارهی منشیه که برانجه کار میکنه ژان میگه اینم نتیجه مشروب خوردنه تو دیگه اختیار دست و پای خودت هم نداری قبر خودت رو به دست خودت داری میکنی برانجه میگه که اونقدر ها مشروب دوست نداره با وجود این اگه نخوره حالش سر جاش نیست. درست مثل اینه که ترسیده باشه و اون وقت هی الکل میخوره تا دیگه نترسه. حالا از چی خودشم نمیدونه. انگار یه نوع دلهورهیه که توصیفش برای خودشم مشکله. میگه که من خودمو تو زندگی بین مردم ناراحت حس میکنم. و اون وقته که یه گیلاس مشروب میخوره تا احسابش راحت بشه و فراموشش کنه. جام میگه تو خودت رو فراموش میکنی نه ناراحتیات رو. رانجه جواب میده من خستم. سال هاست که خستم. به زحمت وزن خودم رو تحمل میکنم. به خودم عادت نکردم. نمیدونم که این آدم منم یا نه. اما به محض اینکه یه گیلاس میزنم، اون بار از روی دوشم برداشته میشه و از نو خودمو میشناسم. دو مرتبه خودم میشم ژان اما همه حرفهای برانجر رو یه مشت اراجیف میدونه همین موقع منطقدان و آقای پیر هم سر یک از میزها میشینند از اینجا به بعد گفتگوی بی سر و ته بین ژان و برانژه و همزمان بین منتقدان و آقای پیر به شکل یک الگوی موازی اما جداگان از هم پیش میره یه مقداری وقتی اینطوری بدون اینکه اجرای روی صحنه باشه یا بدون اینکه خودتون متن رو دستتون بگیرید سخت دنبال کردن این گفتگو یه مقداری دقت کنید متوجه میشید منتقدان به مرد پیر میگه این یه نمونه قیاس منطقیه. گربه چهار تا پا داره. پیشی و ملوس هر کدوم چهار تا پا دارن. پس پیشی و ملوس گربند. مرد پیر میگه خب سگ من هم چهار تا پا داره. و منطق دام بهش میگه که پس اونم گربه است. پشت میز اون طرف برانجه به جان میگه تنهایی خیلی به هم سنگینی میکنه. اجتماع هم همینطور. ژان جواب میده تو ضد و نقیز میگی این تنهایی که بهت سنگینی میکنه یا اجتماع خودتو یادم یا متفکر میدونی اما هیچ منطقی نداری آقای پیر میگه منطق چیز قشنگیه منطق دانم جواب میده به شرط این که ازش سوء استفاده نشه این طرف برانجه میگه زندگی کردن چیز غیر طبیعیه. و جان میگه برعکس خیلی هم طبیعیه. دلیلش هم اینه که همه مردم زندگی میکنند. برانجه میگه مرده ها خیلی بیشتر از زنده تعدادشون تعدادشونم روز به روز داره زیادتر میشه. زنده ها کمند. من اصلا از خودم میپرسم. اصلا من وجود دارم. و جان دکارتگونه جواب میده که تو وجود نداری دوست عزیز چون فکر نمی کنی فکر بکن اون وقت وجود خواهی داشت اون طرف منطقدان به مرد پیر یه قیاس منطقی دیگر رو یاد میده اینکه تمام گربه‌ها فناپذیرند سقراط هم فناپذیره پس سقراط گربه است آقای پیر هم تایید می‌کنه چون گربه‌ای که داره اسمش سقراته این طرف گفتگو میرسه به دیزی که برانژه عاشقشه برانژه امیدی به جلب توجه دیزی نداره چون به قول خودش نه درس خونده نه آینده درخشانی داره و نه هیچ شانس دیگهی. در حالی که همکار دیگش یه مرد لیسانسه حقوق دانه با آینده درخشان اداری که از پس رقابت کردن باهاش بر نمیاد. مخصوصا که حتی رئیس اداره هم با دیزی خوبه جان بهش میگه که تسلیم نشه میگه زندگی یعنی مبارزه مبارزه نکردن یعنی بیغیرتی جان به برانج پیشنهاد میده که به وسیله ارادش مسلح بشه اونم سلاح صبر و فرهنگ و هوش. برانژه اما باز خمیازه میکشه و ژان ادامه میده که بورو ی تیزهوش تیسو درخشان باش خودتو در جریان مسائل روز بذار برانژه میگه باشه ولی مشكله ژان راه فرهیخته شدن رو این میدونه که برانجه لباس مرتب و تمیز بپوشه و هر روز صبح ریشش رو بتراشه حتی اگه شده از مشروبش بزنه تا بتونه بره اتوشویی از استعدادش هم استفاده کنه. خودش رو در جریان جنبش‌های فرهنگی اصر خودش بذاره. منطقدان و جان هر کدوم به نوبه خودشون سعی در متقاعد کردن دوستشون دارند. جان از برانجه میخواد که توی وقت‌های آزاد هر چند اندکش بره و موزه‌ها رو ببینه، مجله‌های ادبی رو بخونه، به سخنرانی گوش بده. این کارا رو بکنه تا فکرش پخته بشه یا به جای مشروب بره و بلیت تئاتر بخره مثلا بهش میگه اصلا از تئاتر آوانگارد که اینقدر حرفشو میزنن خبر داری تا لا از های یونسکو چیزی دیدی یادمونه که یونسکو نویسنده همین نمایشنامه است اینجا داره به خودش اشاره میکنه الان یکیشو دارن نشون میدن برو ببین همین میشه یه وسیله آشنایی جالب با زندگی هنری دوره خودمون برانجه بهش قول میده که حرفشو گوش بده اما ژان میگه تو به خودت باید قول بدی برانجه که کاملا تحت تاثیر حرفای ژان قرار گرفته قول میده که به جای مشروب خوردن فکرشو تربیت کنه و همین بعد از ظهر هم به موزه شهرداری برو دوتا دو تاعتر بگیره اما جان که تا همین الان داشت برانژه رو نصیحت میکرد و جست روشنفکری گرفته بود میگه که امشب قراره با دوستاش بره و آبجو بخوره برانجه یک که میخوره میگه حالا خودت شدی سرمشق بد واسه دیگران اما جان بهونه میاره که دائم الخمر نیست و خودشو تبرئه میکنه مجدداً صدای دویدن و هن و هن سر و صدایی کرگدن شنیده میشه صداش بلنده و همگی مجبور میشن با فریاد حرفاشون رو به هم بزنند. سر و صدا بعد از مدت کمی اونقدر بلند میشه که مکالمه هر چهار نفر رو میپوشونه جان و منطقدان هر دو بلند میشن به طرف چپ صحنه نگاه میکنن و چشمشون به کرگدن میافته. پیش خدمت از ترس سینیش رو که چندتای گیلاس روشه ول میکنه و گیلاسها پخش زمین میشن و میشکنند. این وسط دیزی هم از سمت چپ وارد میشه. همه از جمله دیزی همزمان میگن وای کرگدن. برانجه اما برعکس همه میگه وای دیزی و سعی میکنه مخفی بشه کافه چی از اون طرف به خاطر زرری که پیش خدمت بهش زده بد جوری شاکیه و شروع میکنه به توبیخ کردنش آقای پیر منطقدان و بقال و زنش میان وسط صحنه و همزمان سر و صدا و داد و بیداد مردمی که فرار میکنند بلند میشه و بعد ناله یه گربه و بعد از اون هم ناله دلخراش زن شنیده میشه خانم خونهدار در حالی وارد میشه که سبد همراهش نیست و گربه خونالودی رو هم در بغل داره گربه مرده همه شروع میکنند به دلداری دادن خانم خونهدار از طرفی پیشخدمت میره تا گیلاس های شکسته رو جمع کنه تو این گیرو دار که دیزی برانژه رو میبینه برانژه که دیگه نمیتونه خودش رو مخفی کنه از دیزی بابت اصلاح نکردن ریشاش اصخاهی میکنه ولی دیزی انگار توجه چندانی به این مسئله نداره از اون طرف خانم خونهدار گربه مردش رو در بغل گرفته و تکونش میده آقای پیر و خانوم بقال مشغول دلداری دادنش میشن و منطقدان بهش میگه که تمام گربه ها فناپذیرند و باید به این واقعیت تم بدیم پیش خدمت هم به کافچی که گفته هزار فرانک بابت خسارت پاش می نویسه میگه که اون فقط به فکر پولاشه آقای پیر خانم خونه که الان عزادار رو پشته یه میز می نشونه و بقیه هم دنبالش میشینند کافه همین که برانجه پیشنهاد میده به جای آب معدنی بهتر نیست کونیاک بهش بدم بخوره تا زودتر حالش بهتر بشه از فرصت استفاده میکنه و پیش خدمت دستور میده به حساب برانژه برای خانم خونه دار کونیاک بیارن خانم خونه بعد از آورده شدن کنیاک اولش میگه میل نداره و اینا اما در انتها با تشویق بقیه از کنیاک میخوره کم کم دوباره بحث به کرگدن ها میرسه این بار میخوام ببینند کرگدن آخری که دیدن همون کرگدن اولی بوده یا نه جان میگه اینکه الان گذشت دو تا شاخ رو دماغش بود کرگدن آسیایی بود اولی فقط یه شاخ داشت آفریقایی بود برانژه یک مرتبه عصبانی میشه و به ژان میگه که داره پرتوپلا میگه چون حیوان اونقدر تند گذشت که با اون همه گرد و خاکی هم که شده بود اصلا نمیشد شاخاش رو تشخیص داد ژان که بهش برخورده میگه من که تو عالم هپرود نیستم من فکرم سر جاشه سریع حساب میکنم جر و بحث ژان و برانژه مدام بالا و بالاتر میگیره و صداشون بلند و بلندتر میشه از نظر برانج ژان یا آدم پرمدعا بیشتر نیست. یا آدم فضل فروش که تازه به معلوماتش هم مطمئن نیست چون برعکس کرگدن آسیاییه که یه شاخ داره و آفریقاییه که دوتا شاخ داره. جان برعکس اینو گفته. کم کم دیگران هم دورشون جمع میشن. ژان از شدت عصبانیت از دست برانژه قبل از اینکه بیرون بره بهش میگه مرتیکه دائم الخمر که باعث تعجب همه میشه ژان میره و بقیه میمونند و خانم خونهداری که برای گوربه از دست رفتش داره عزاداری میکنه برانجه از رفتارش با ژان پشیمونه با این که عقیده داره جان همیشه میخواد معلوماتش رو به رخ مردم بکشه و هیچ وقت هم قبول نمیکنه که ممکنه اشتباه بکنه. بحث بیفایده و بیمعنای کرگدنهای یک شاخ و دو شاخ همچنان گرمه. منطقدان که میاد وسط تا نظر خودش در این زمینه بده مدارک منطقدانی هرفیش رو نشون برانجه میده و بعد سعی میکنه مسئله کرگدنها رو به قول خودش به طرز صحیحی مطرح کنه منطقدان مسئله رو براشون یکی یکی میشکافه و جلو میره از نظر برانجه این کار مشکلی رو حل نمیکنه اما از نظر منطقدان خوبیش به اینه که مسئله حداقل به طریق صحیحی طرح شده اندکی بعد خانم خونه با جعبهی ای در دست از صحنه خارج میشه. بقال میگه که مردم نباید اجازه بدن که گربه هاشون جلو چشماشون زیر دست و پای کارگدان ها له بشن. بقیه هم به جز برانژه که تو افکار خودش غرقه با بقال موافقت میکنند برانژه از صاحب کافه میخواد که یه گیلاس کنیاک اونم بزرگ براش بیاره و بعد در حالی که سفارشش از راه میرسه با خودش میگه من نباید عصبانی میشدم الانم بیشتر از حدی که بتونم به موزه برم قصه دارم تربیت فکرم باشه برای بعداً صحن دفتر یه اداره است ته صحنه یه دره بزرگ دولنگه است که بالاش نوشته شده رئیس بخش طرف چپ نزدیک میز رئیس میز کوچیک دیزیه که یه ماشین تحریر روش قرار داره یه میز دیگه هم بین میز دیزی هست و دری که به پلکان باز میشه و روش دفتر حضور و قیاب قرار داره چند تا از پله های پلکان و پاگرد و نرده هاش رو می شدید و پنجری که ته صحنه نزدیک دیوار سمت راسته در قسمت جلو یه میز با دو تا صندلی که میز برانژه و همکارش بوتاره روی میز مجله و دوات و جاقلمی و اینجور چیز هسته برانژه روی سندلی چپ میشینه و بوتار روی صندلی راست. میز کار دو نفره ای برای دودار و آقای گاب نزدیک دیوار راسته. دودار که معاونه جایی میشینه که بقیه رو جلوی چشمش داشته باشه. ساعت نه و سه دقیقه صبح پرده نمایش بالا میره دودارو و بوتار دور میز ایستادن رئیس بینشونه و دیزی یکم رو به جمعیت ایستاده و توی دستش اوراق ماشین شده رو نگه داشته رئیس بخش اسم شاهپرک خوشبوشه و میخوره که حدوداً پنجاه سالی داشته باشه دودار که کارمند مهم اداره است و بوتار هم خیلی ازش خوشش نمیاد مرد هیکلدار سی و بوتار یه معلم از خود رازی بازنشسته است و دیزی رو هم که توی پرده قبل باهاش آشنا شدیم یه دختر جوان و مخورمایی همشون ایستادند و همینطور که میشه حد زد دارن راجع به کرگدنها صحبت میکنند بوتار عقیده داره که اینا همش یه ما است دیزی اما میگه که با چشمای خودش دیده و دودار هم تایید میکنه که تو روزنامه راجبهش خونده ولی بوتار باز حرف خودشو میزنه میگه شایعه است شاه پرک رئیسشون روزنامه رو از دودار میگیره تا خبر له شدن گربه زیر پای حیوان پوست کلفت رو بلند بخونه ولی بوتار بازم باور نمیکنه. عقیده داره روزام نویس های گو بیشتر نیستند و میگه فقط هر چی رو که با چشماش ببینه باور میکنه از نظرش خبر به هیچ وجه دقیق نیست و حتی معلوم نبوده گربه نر بوده یا ماده هرچند اصلا نجات پرست نیست شاهپرک و دودار بهش میگن اصلا این موضوع چه ربطی به نجات پرستی داره بوتار میگه نژادپرستی پرستیک از اشتباهات بزرگ قرن ماست و هیچ فرصتی رو نباید برای تختهاش از دست داد. بعد هم اضافه میکنه که روزنامه نگارها از کاهکوه ساختن تا روزنامهشون فروش بره و نوکری اربابشون رو بکنند. همینطور که اینا دارن صحبت میکنن و اون یه نفر داره انکار میکنه که کارگیدم وجود داره و بقیه دارن اصرار میکنن که هست. برانجه از پلکان وارد صحنه میشه آهسته در اداره رو باز میکنه که شاهپرکم هم هنوز متوجه حضور برانژه نشده به خاطر امین به دیزی میگه که ساعت از نه گذشته و بره دفتر حضور و قیاب رو جمع کنه دیرکرده ها هم که خوب تقصیر خودشونه بوتار که همچران داره حرف میزنه به دودار و شاهپرک میگه که داره با جهل مبارزه میکنه. حالا هر جا که میخواد باشه. از اون طرف دیگزی طوری که کسی متوجه نشه از برانجه میخواد عجله کنه و زودتر بیاد دفتر رو امضا بکنه تا غیبت نخوره. برانجه میگه هنوز که نه و دقیقه نشده. از اون طرف شاهپرک هم داره کم صبرش کم از حرفای بوتار، لبریز میشه میگه مبارزه با جهل اونم در حالی که همکارش لیسانس حقوق داره و کارمند ای هم هست مگه بی سوادن منظورش اینه که دودار خوب با سواده آدم جاهلی نیست که بوتار میگه من میخوام با جهل مبارزه کنم بوتار میگه دانشگاه و دانشکده ها ارزش مدارس ابتدایی رو هم ندارن بعد هم روح میکنه به دودا رو میگه اون چیزی که دانشگاه ها کم دارن افکار روشنه روح مطالعه است و علاقه است به عمل شاه دفتر حضور و قیاب رو از دیزی میگیره به نظر میاد که تازه متوجه حضور برانجه شده برانجه به طرف جالباسی میره لباس کارش رو میپوشه و میره پشت میز کارش بوتار همچنان داره میگه که دانشگاهی از زندگی چیزی سرشون نمیشه که شاپرک از برانجه میپرسه اونم ها رو دیده یا نه برانجه میگه خب بله معلومه که من هم دیدم بوتار پشت سر برانجه حرکتی از خودش در میاره که یعنی برانجه مست و اینقدر خیال بافه که ممکنه هر چیزی دیده باشه بحث اینجا هم به یه شاخ یا دو شاخ بودن ها میرسه آقای شاهبرک به ساعتش نگاه میندازه و هر چی بالبال میزنه که همه برگردن سر کارشون کسی توجهی نمیکنه. بوتار که این ماجرا رو فقط یه افسانه میدونه به دودار میگه اینا همه مرض روحی دست جمعیه. مثل مذهب که واسه ملتها حکم تریاک رو داره. آقای شاهپرک که می‌بینه بوتار شورش رو داره درمیاره موفق میشه با تهدید کسر حقوق همه رو وادار کنه که سر کارشون برگردن کار دودار اینه که از قانون تشدید مجازات ضد الکل تفسیر تهیه کنه و و بوتار هم باید با هم نمونه‌های مقررات شراب های ضمانت شده رو تصیح کنن دیزی هم باید جواب نامه ها رو برای امضا کردن به اتاق شاه پرک ببره و بعد هم ماشینشون کنه. همه مشغول کار میشن. دیزی میره سر میز خودش و شروع میکنه به تایپ کردن. دودار سر میز خودش و برانژه و بوتار هم سر میز کوچیک خودشون میشینند. بوتار و برانژه هر دو اوقاتشون تلخه. نمونه های چاپخونه رو روی میز مرتب می کنه و نسخه های خطی رو به بوتار میده. بوتار غغر کنان میشین و شاهپرک هم میگه الان بر میگردم آقایون و بیرون میره. با بیرون رفتن شاهپرک بوتار کمی بعد دوباره شروع میکنه به حرف زدن. اینگه که اینا هم افسان است و داستان کنی مشتبلیغات رو از همین این حرف رو. با دار عصبانیت میگه اما هرچی باشه، من مثل بعضی ها جیرخور بقیه نیستم بوتار با عصبانیت مشتش رو به میز میکوبه و از جاش بلند میشه اما با باز شدن در اتاق رئیس هر دو فورند میشینند و سکوت برقرار میشه آقای شاه در حالی که دفتر حضور و غیاب رو به دست داره میپرسه آقای گاب امروز نیومده و تازه اینجاست که همه متوجه نبود همکارشون میشن رئیس که به حضور آقای گاب نیاز مبرم داره از نبودنش حسابی عصبانیه و میگه اگه بخواد همینطور ادامه بده بیرونش میکنم اولین بار نیست که داره کلک میزنه کسی هست که کلید میزش رو داشته باشه همین موقع اتفاق ای میفته خانم گاب نفس نفس زنان از پله ها بالا میاد و وارد اداره میشه شاپرک میپرسه شوهرت کو یعنی این حالش خوب نبود که نتونست خودش بیاد خبر بده؟ خانم گاب که از شدت خستگی تقریبا نزدیک از حال بره توضیح میده که آخر هفته شوهرش میره پیش فامیلاشون و الان هم سرما خورده و بعد هم کاغذ رو دراز میکنه سمت شاپرگ و میگه که خودش توی تلگراف نوشته و امید داره تا چهارشنبه برگرده خانم گاب تقاضای سندلی و یلیوان آب میکنه و وقتی برنج سندلی رو میاره تقریبا رو صندلی میافته. دیزی آب به دستش میرسونه و شاه هم میگه که حالا درست آقای گاب نیستن ولی دلیل نمیشه خانم گاب اینقدر دست پاچه بشن خانم گاب تته پته میگه آخه آخه از خونم تا اینجا یک افتاده بود دنبالم رانجه میپرسه که یه شاخ یا دو شاخ بوتار شروع میکنه به خندیدن و دودار با تحقیر میگه که بذاری طرفشو بزنه آقای بوتار خانم گاب به سمت پلکان اشاره میکنه و میگه اونجاست اون پایین مثل اینکه که میخواست از پله ها بیاد بالا و ناگهان صدایی بلند میشه همین موقع پلکان زیر سنگینی جسمی خورد میشه و پایین میریزه صدای خرخر کرگدن شنیده میشه خانم گاب دستش رو روی قلبش میذاره شاهپرک و دودار و بوتار تن زنان میدون سمت پلکان که پاگردش توی هوا معلق مونده بوتار که هنوزم چیزی رو که حالا با چشماش داره میبینه باورش نمیشه میگه خیلی عجیبه آخه یعنی چی؟ برانجه و دیزی هم به بقیه ملحق میشن دیزی میگه نگاه کنین چطوری دور خودش میگرده دودار میگه مثل اینه که دنبال کسیه و بوتار تو فکره که کاسهی زیر نیم کاسه است شاه پرک راضی از اینکه که پلکان خراب شده چون خیلی وقت از حیط مدیره تقاضایی ساختن یه پلکان سیمانی درست حسابی رو جای پلکان موریان خورده یه شون کرده بود برانجه شروع میکنه از بوتار سوال کردم میگه شما که این همه چیز میدونین به نظرتون دو شاخ بودن مشخصه که شاپرک میاد وسط حرفش و میگه اینقدر برانجه پرتوپلا نگه و این پرتوپلا گفتنش نشونه مستی و خمار بودنشه بوتار انگار حق داشته در موردش بحث هم اینطور بالا میگیره دیزی سعی میکنه آرومشون کنه تا اینکه اتفاق عجیب دیگه خانم گاب چند لحظه‌ای به کریدن نگاه میکنه و بعد فریاد ترسناکی می‌کشه. رانجه می‌پرسه چی شده؟ و خانم گاب در کمال تعجب همه میگه این شوهرمه. گاب گاب بیچاره منه. چه بلایی سرت اومده؟ دیزی می‌پرسه یعنی شما مطمئنید که خانم گاب اما میگه که شناختمش شناختمش و کرگدن در جواب خورناس محبت آمیزی میکشه و بعد خانم گاب بیهوش میشه. برانج دودار و دیزی خانم گاب رو میکشند و میبرن روی صندلی مینشونند. شاهپرک و دودار از منظر حقوقی در حال بررسی مسئلند بوتار معترضان میگه مطمئن باشید که من تمام قضیه رو به هیئت نمایندگی گزارش میدم. وقتی رفیقم به هم احتیاج داره تنهاش نمیذارم. همین موقع است که خانم گاب به هوش میاد. در حالی که لابلای حرفاش خورناسه میکشه میگه نمیتونم شوهر بیچارهمو اینجوری ول کنم. و با لحن مهربونی ادامه میده داره منو صدا میکه. داره منو صدا میزنه. همین موقع دیزی بقیه رو متوجه میکنه به خاطر خراب شدن پرلکان باید فکری با حال چطوری بیرون رفتن از اونجا بکنند. بنابراین همه به استثنان ی گاب میرن سمت پنجره میبینن ارتفاع زیاده و تنها چارهی که میمونه این رو که زنگ بزنن آتش نشانی. دیزی از صحنه خارج میشه. بعد صدای تلفن میاد و شماره گرفتن. الو الو آتش نشانی؟ شاه پرک؟ به خانم گاب توصیه میکنه که اگه الان بخواد طلاق بگیره مدرک خوبی داره اما خانم گاب مدام میگه نمیتونه شوهرش رو تو همچین وضعی رها کنه آخرش هم با تمام وجود به سمت پلکام میره خانم گاب در حالی که لبه پله های ایستاده و آماده پریدنه همه به جز دیزی که مشغول تلفنه به طرفش میدوان خانم گاب میپره و دامنش دست برانجه که میخواست متوقفش کنه باقی میمونه صدای محبت ها میزه کرگدن از پایین پرله ها به گوش میرسه خانوم گاب حالا روی کمر شوهرش میشینه و بعد کرگدن همراه خانم گاب چهار نل میذاره و میره همه میدون سمت پنجره و با هم به این منظره عجیب خیره میشن. دیزی وارد صحنه میشه و میگه که به زحمت تونسته آتشنشانی رو بگیره چون تعداد کرگدنها همین طوری داره زیاد و زیادتر میشه و معمورهای آتش نشانی رفتند سراغ کرگدنهایی که از هر گوشه شهر سر سرکلشون داره پیدا میشه صبح 8 تا بودن و حالا شدن 17 تا یا شایدم 32 تا بوتار میگه که اقراقه و شاهپرک هم رفته تو این فکر که حالا که یه کارمند کم شده باید براش جانشین پیدا کنه. برانجه میپرسه یعنی دیگه به دردمون نمیخوره و بوتار هم مخالفه که بدون اختار قبلی اخراجش کنند. اما شاهپرک میگه که تصمیمش دست اون نیست. دودار از بوتار میپرسه که هنوزم وجود کریدن رو انکار میکنه بوتار جواب میده که هیچ وقت ظهور شدن کرگدن رو نفی نکرده و وقتی همه میگن داری مغلطه میکنی جواب میده که فقط دلش خواسته بدون این قضیه تا کجا پیش میره. ولی تکلیف خودشو میدونه و فقط ناظر این واقعه نیست. اونو میفهمه و تفسیرش میکنه. همه میگن خب تفسیرش کن ولی بوتار میگه الان نه. ولی علت قضیه رو میدونم اینا همش کلکه، فقط دوروها خودشونو خودشونو به نفهمیدن میزنند بالاخره صدای بوغ آتش نشانی و بعد هم صدای ترمزش زیر پنجره به گوش میرسه. بوتار همچنان داره وراجی می کنه و دودار خسته از شنیدن صحبتهاش میگه که حرفای شما هیچ معنایی نداره آقای بوتار. کرگدم وجود داره همین و تمام. دیزی مشغول راهنمایی کردن مردها میشه که از کجا باید برن پایین. شاهپرگ این وسط نگران عقب افتادن کارهای اداره است و حرفایی که ممکن هیت مدیره بابت تعطیل کردن سرخود اداره بهشون بزنه. سر و کلی معمول آتش نشانی از پنجره پیدا میشه. دیزی اولین نفریه که با کمک آتش نشان خارج میشه. شاهپرگ از همون دم پنجره بهش تذکر میده که کارهای اداره رو حتی شده توی خونه شاه پرک بیاد و انجام بده به بقیه هم اعلام میکنه که اداره تعطیل نیست و در اولین فرصت باید کارها رو از سر گرفت بوتار میگه میبینین آدم و تا دم مرگ هم استثمار میکنند دوباره سر و کله معمور آتش نشانی پیدا میشه و این بار شاه پرک با کلی کاغذ و پرونده زیر بغلش میره بالای پنجره بعد نوبت بوتار میشه و در حالی که میگه میخواد با مدرک و دلیل به مقامات بالا ثابت کنه که افراد اینجا خصوصا دودار همه خائنند از پنجره بالا میره قبل از پیدا شدن دوباره معمور آتش نشانی دودار از برانجه میخواد که بعد از ظهر با هم گیلاسی بزنن برانجه میگه نمیتونه آخه میخواد بره پیش جان چون خودشو توی بحثشون مقصر میدونه و میخواد باهاش آشتی کنه همین موقع معمور آتشنشانی میرسه و برانژو و دودار بعد از کلی تعارف کردن یک مرتبه هر دوشون با هم از پنجره بالا میرن. و بعد معمور آتشنشانی به دو نفر به صورت همزمان در پایین رفتن کمک میکنه. صحنه اتاق جان رو به نمایش میذاره. جان، پشت به تماشاگران روی تخت خوابیده. سرفه میکنه. برانجیه پشت در ظاهر میشه، در میزنه. جان جوابی نمیده. برانجیه دوباره در میزنه و همزمان جان رو صدا میکنه. اونقدر این کارو میکنه تا دری باز میشه و پیرمرد ریش سفیدی از داخلش به بیرون سرک میکشه. میپرسه چه خبره؟ برانجیه جواب میده که اومده دوستش جان رو ببینه. پیرمرد میگه خیال کردم با من کار داشتین. آخه اسم منم ژانه. صدای زن پیرمرد از ته اتاق به گوش میرسه که میپرسه با ما کار داشتین؟ پیرمرد به طرف زنش که ما نمیبینیم میگه نه با اون یکی. رانژه باز در میزنه و ژان رو صدا میزنه. پیرمرد میگه ندیدم امروز از خونه بیرون بیاد. دیشب دیدمش دلو دماغی هم نداشت. میگه دلیلش رو میدونم. من مقصرم. زن پیرمرد صداش در میاد که ژان پرحرفی نکن. بعدش پیرمرد در رو می و میره. برانژه باز در میزنه. ژان که پشت به تماشاگرها خوابیده با صدای کلفتی میگه چه خبره؟ برانجه میگه اومدم تو رو ببینم جان. منم برانژه در بسته است. جان در حالی که یه پیجامه سبز رنگ پوشیده با بیحالی بلند میشه هیلیت رو توی قفل میگردونه دوباره میره توی تخت خواب و میگه عجیبه من صدای تو رو نشناختم برانجه میگه من هم همینطور من هم صدای تو رو نشناختم مریضی؟ جان در جواب قررش میکنه برانجه میگه میدونی جان من خیلی احمق بودم که با تو دعوا کردم اون هم سرییه قضیه بی اهمیت کمی طول میکشه تا جان منظور براننج رو متوجه بشه ازش میخواد که دیگر رو نزنه. میگه من حالم زیاد خوش نیست و شروع میکنه به سرفه کردن <تصفيق> برانژه میگه لابد واسه همینه که اینطوری رو تخت خوابیدی. بعد لحنهنش رو تغییر میده و ادامه میده، میدونی جان، توی شهر هم کرگدن یه شاخ هست هم دو شاخ در اصل قضیه فرقی نداره که اولی ها از کجا میان و دومی از کجا تنها چیزی که به نظر من اهمیت داره وجود کرگدنه چون که حرف برانجه ناتمون میمونه چون جانحالش خوش نیست و بیتابه میگه یه چیزی توی بدنش داره میجوشه کم کم صداش کلافت میشه و سردردش شروع برانج میگه که صداش دورگه شده و واسه همین بود که اول صداشو نشناخته جان دستش رو میذاره روی پیشونیش و میگه بیشتر پیشونیمه که درد میکنه صدای جان دورگه تر میشه برانج به جان نزدیک میشه و میگه اگه خورده باشی به جایی باید ورم کرده باشه آره آره اینهاش هاش یه قوزک در آوردی. یه ورم کچولوه جان باورش میشه. بلند میشه و به طرف همون میره تا خودش رو ببینه وقتی برمیگرده تو اتاق برانجه بهش میگه که حالش ناجوره رنگش سبز شده و نفسش خیلی سر و صدا داره جان روی تخت میشینه برانجه نبزش رو میگیره ولی میبینه که کاملا عادی میزنه از جان میخواد که دکتر خبر کنه ولی جان به دکتر اعتقادی نداره میگه دکترها مرزهایی اخترامی کنند که اصلا وجود نداره برانجه میگه به خاطر عشق مالجه ای مردم این کار رو میکنند مرزهایی که اخترامی کنند مالجه هم میکنند ژان میگه نه من فقط به دامپزشگاه اعتقاد دارم برانجه بازوی ژان رو مایه میکنه جام با خشونت دستش رو میکشه و میگه چته؟ مگه جونور دیدی که اینجوری زل زدی به من؟ برانجه میگه پوستت پوست جلوی چشم آدم داره رنگ عوض می‌کنه. سبز شده، سفت هم شده. باید دکتر خبر کرد. برانژه به طرف تلفن میره اما ژان به سرعت اونو عقب میزنه. برانژه بهش میگه که ژان امروز خیلی گریز شده. ژان جواب میده: آره، آره، گریز شدم. گریز خوشم میاد که از مردونگریزون باشم. راستش از مردم نفرت ندارم برام بی تفاوتن. بهتر بگم ازشون اققم میگیره باید مواظب باشن سر راه هم نیان که خوردشون میکنم من یه هدف دارم که یک کله به طرفش میرم جان شروع میکنه به قدم زدن در اتاق و برانژه هم سعی میکنه که سر راهش قرار نگیره و فکر میکنه ژان داره یه جور بحران اخلاقی رو میگذرونه صدای جان مدام خشن و خشنتر میشه و وقتی میبینه تو لباساش احساس راحتی نمیکنه شروع میکنه به باز کردن دکمه پیژامش. برانجه میپرسه چه بلایی سر پوستت اومده؟ انگار از چرمی داری دم به دم سبز تر میشی. جان میگه تو امروز وسواس رنگ گرفتی. بازم خیالات ورد داشته. این نتیجه اون گذشته بیبند و بارته برانجه میگه که بهت قول دادم که خودم رو اصلاح کنم تو که میدونی من به نصیحت های دوستی مثل تو گوش میکنم هم خودم رو تخییر شده حسن میکنم برعکس و بعد هم میگه میدونی چه بلایی سر گاب اومده کرگدن شده ژان حالا حسابی گرمش شده و مدام خودشو باد میزنه خاطر همین برای آب زدن به سر و صورتش با عجله به طرف همون میره صدای باز کردن شیر آب و صدای نفس نفس های جان به گوش میرسه جان میگه اگه هم شده باشه چی؟ رانژه میگه به نظر من که بعید میاد برصورت زنش که در جریان نبود جان به سرعت پیراهنش رو بیرون میاره و میندازه روی تخت میگه گاب، هیچ وقت زنش رو در جریان نقشه هاش نمیذاشت و بعد از نو وارد همون میشه برانج به طرف همون میره ولی جان در رو جلوی صورتش میکوبه جان میگه کاب زندگی خصوصی خودشو داشت تا قلبش یه گوشه دنجی برای خودش نگه داشته بود و تازه چه به میل خودش کارگدان شده باشه چه برخلاف میل خودش شاید خیلی براش بهتر بود حالا که دلش میخواسته کرگدن بشه حالا که از این کار خوشش میومده خب چیز ای نیست ولی اون هم که فکر میکنی بد نیست هرچی باشه کرگدن ها هم مخلوقاتی هستند نظیر ما مثل خود ما حق زندگی دارن پرانجه میگه به شرطی که زندگی ما رو ریشکن نکنن تو اصلا حساب اختلاف طرز تفکر رو کردی؟ ژان که حالا مرتب در اتاق قدم میزنه و دائما بین هموم و اتاق در رفت و میگه که خیال میکنی طرز فکر ما خیلی بهتر از گرگداناست. برانجه جواب میده که هرچی باشه ما ملاکهای اخلاقی خودمون رو داریم که به نظر من با اخلاق حیوونا کاملا مقایره جان میگه اخلاقو رو در کوز آبش بخور اخلاق چه چیزیه اخلاق چه چیزش قشنگه دیگه اخلاق کفرم و در آورده ما از خیر این ملاک اخلاقی گذشتیم برانجه میگه حالا اخلاق بره چی جاش بیاد جان میگه طبیعت طبیعت قوانین خودشو داره اخلاق زد طبیعته برانژه میگه اگه درست فهمیده باشم تو میخوای به جای اخلاقی قوانین جنگل رو رواج بدی جان میگه من تو این جنگل زندگی میکنم ما باید شالوده زندگیمونو از نو بریسیم ما باید برگردیم به همون خلوص اولیه برانژه اما باش موافق نیست جان با سر و صدا نفس میکشه برانجه میگه داخل یه کمی فکر کن تو میدونی ما یه فلسفهای داریم که حیونا ندارن یه سیستم ارزشیابی منحصر به فرد داریم قرن هاست تمدن بشری این سیستم رو ساخته جان از سوی همون میگه همه اینا رو بریزیم به هم خراب کنیم اوضاعمون بهتر میشه جان از همون بیرون میاد و خورناسته میکشه برانجه نمیتونه قبول کنه که این حرفها امق فکرهای جان باشن میخواد براش از شعور بشر حرف بزنه ولی جان بهش میگه که دیگه کلمه انسان رو به زبون نیاره میگه بشریت دیگه ی دورش گذشته و برانژه هم یه آدم قدیمی احساساتی مزهکه برانجه تعجبش از حرفهای جان هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه میگه نکن عقل تو از دست دادی نکنه دلت میخواد کرگدن بشی جان میگه چرا که نه؟ من که مثل تو پیشتاوری نمی کنم. من از تغییر استقبال میکنم. بعد به طرز وحشتناکی از همون بیرون میاد برآمدگی پیشونی شبیه شاخ کرگدنه به سرعت میدوه طرف تخت خواب و تخت رو به هم میریزه صداهای عجیبی از خودش در میاره. حرفاش به زحمت فهمیده میشه. دلش میخواد همه چیز رو خراب کنه. لباسها بدنش رو میخارونند. پیجامتش رو هم در میاره. برانجه اینجا از بی جان میکنه و میگه که دیگه کسی که جلوش هست رو نمیشناسه. جان با سر به برانژه حمله میکنه. برانجه سری خودش رو کنار میکشه. جان با خورناسه ازخاهی میکنه و به سرعت میدهوه توی همام برانجه میخواد فرار کنه اما دلش نمیاد دوستش رو همینطوری بل کنه برای همین برمیگرده و وارد همون میشه برانجه میگه شاخت همینجوری داره جلوشش آدم دراستر میشه کرگدن شدی بعد صدایی وحشتناکی از داخل همون میاد ناگه هم برانجه با وحشت قریبی بیرون میدوه و در رو با تمام فشاری که پشتش هست میبنده اما شاخ کرگدن در همون رو سوراخ میکنه دیوار از فشار حیوون میلرزه صدای خورناسش بلندتر میشه و برانجه فرار میکنه همینطور که داره با عجله به طرف در سمت راست میدوه میگه هیچ وقت همچین گمونی بهش نمیبردم بعد به سمت در دیگه میدوه که مال همسایه است، میکوبه به در در باز میشه و برانژه به پیرمرد میگه پلیس رو خبر کنین. یه کرگدن تو ساختمونه. صدای زن پیرمرد میاد که باز به شوهرش میگه چه خبره جان؟ نه پیرمرد و نه زنش اهمیتی به حرفای برانژه نمیدن و در رو محکم به روش میبندن. برانژه همچنان با فریاد میگه پلیس خبر کنین. یه کرگدن تو امارته. بعد به سمت در خونه دربان میره. پنجره بالای خونه باز میشه اما جای سرایدار یه کرگدن ازش بیرون میاد رنج ناچار به سمت خونه پیرمرد برمیگرده در باز میشه اما عوض پیرمرد و زنش دو تا کله کرگدن ازش بیرون میاد. رنج میگه وای خدا و به ناچار وارد اتاق ژان میشه. میره به طرف پنجره که فقط چارچوبش روی صحنه است. تلو تلو میخوره به زحمت از چارچوب پنجره رد میشه به طرف تماشاگرها میاد، اما بعد به سرعت و با ترس از همون رای که اومده برمیگرده. چون از محل ارکستر نمایش چند تا کلهی کرگدن شروع میکنن به حرکت کردن تو کوچه هم یه گلهی کرگدن دیگه را افتاده و فوج فوج کرگدنه که داره سرازیر میشه توی خیابون برانجه به همه طرف نگاه میکنه مونده اون دست کجا بره بیرون کرگدنها وسط خیابون و حتی همه پیادروها رو گرفتن. برانژه دیوانوار این طرف و اون طرف میره. هر بار که به طرف خونه سرایدار یا پیرمرد می میدوه کله های کرگدن ازشون بیرون میاد. بعد دوباره میره طرف پنجره و نگاه میکنه. میگه تازه میگفتن این حیوون منزویه. اشتباه میکنن. تمام نیمکت های خیابون رو خراب کردن. برانژه دوباره به طرف درها میره ولی ها نمیذارن فرار کنه. از نو جلوی در همون میسته، اما در هموم حالا در حال شکستنه برانژه خودش رو به طرف دیوار آخر صحنه پرتاب میکنه. دیوار خراب میشه. ته صحنه کوچه ای نمایان میشه و برنج همینطور که فرار میکنه فریاد میزنه، کرگدن، کرگدن سر و صدایی بلند میشه که نشون میده در هموم، بالاخره خراب شده سحنه تقریبا همون صحنه است و تغییر چندانی نکرده. این بار اما اتاق برانژه است که شباهت زیادی به اتاق جان داره. با مختصری اختلاف. مثلا ایکی دوتا مبل زیادتره، پلکانی، سمت چپ پاگرده و یک ایوان ته صحنه که برانژه روش دراز کشیده و پشتش به تماشاگره. انگار کابوس میبینه چون دائم تکون میخوره و توی خواب هم حرف میزنه. بعد صدای عبور یک گله بزرگ کرگدن از زیر پنجره ته صحنه به گوش میرسه رانج از تخت خواب به زمین میفته داره با چیزی که توی خواب دیده کلنجار میره که از خواب میپره دستش رو روی پیشونیش میذاره با ترس به سمت آینه میره و پارچه ای رو که به پیشونیش بسته کنار میزنه نفس راحتی میکشه چون پیشونیش برامدگی نداره به سمت میز میره میخواد کنیاک بریزه و بخوره ولی بعد منصرف میشه. میره به سمت ایوان که دوباره بخوابه ولی باز صدای کرگدن ها اون رو از جا میپرونه. برانجه دستش رو روی قلبش میذاره و بعد به طرف گیلاس میره و به هر حال نمیتونه خودش رو نگه داره. یه گیلاس میریزه و میخوره. سرفه میکنه. صدای سرفه انگار ناراحتش میکنه. پنجره رو باز میکنه از نو سرفه میکنه و صدای صرفش رو با صدای کرگدن ها مقایسه میکنه. خیالش راحت میشه که صداشون یکی نیست. پنجره رو که میبنده دودار از آخرین پله ها میاد بالا و شروع میکنه به در زدن. برانجه در رو به روش باز میکنه و دودار داخل میشه. برانجه که هنوز نگرانه نظر دودار رو درباره صداش میپرسه که مثلا عوض نشده و اینا پارچه را از رو پیشونیش بر میداره و نشون دودار میده که پیشونیش ورم نکرده مثلا دودار درک میکنه که برانجه بعد از دیدن کرگدن شدن جان اونم درست جلوی روش به همچین حالی در اومده باشه ولی بهش توصیه میکنه که اینقدر بهش فکر نکنه برانجه میگه چطور میتونم فکر نکنم این پسری که اینقدر انسان بود اینطور مدافع انسانیت بود کسی باور میکرد که اونم کرگدن بشه. من از او مطمئنتر بودم تا خودم اگه دیده بودی موقع حمله بهم به چه حالی داشت حالت چهرش صورتش اونم با سه سال سابقه دوستی حداقل میتونست خودشو نگه داره آخه چه دلیلی میشه براش تراشید دودار میگه من که هنوز دلیل قانع کننده گیر نیاوردم من فقط وقایع رو میبینم و اونا رو به خاطر میسپرم به خودم میگم این قضیه هست پس باید دلیلی هم داشته باشه شاید از عجایب طبیعت باشه شایدم چیز دیگه کی میدونه؟ برانجه میگه ژان خیلی مغرور بود ولی من هیچ جاه طلب نیستم از این که هستم راضیم حتی اگه منو متهم کنن که توی دنیای خودم محسورم باز سر حرف خودم میایستم دودار میگه ما هممون همونی که هستیم میمونیم ممکنه این اصلا یه بیماری باشه اما برانجه از سرایت این بیماریه که میترسه دودار عقیده داره که جان کلاً عادی نبود و نمیشه ملاک قضاوت قرارش داد. برانژه اما میگه: "پس آقای گاپ چی؟ اونم دچار بحران یا جنون بود." جان انگار برای خودش دلایلی هم داشت. به نظر میومد که فکر خوب فکرشو کرده و تصمیمش رو گرفته. شاید قضیه تر از اینها باشه. همین موقع سر و صدای ها بلند میشه که از زیر پنجره ته صحنه میگذرند به طرف پنجره می‌دوه. و دودار میگه تو وسواس اونا رو گرفتی الکی داری اصلا تو خورد میکنی مرزهایی هست که آدم میتونه ازشون شفا پیدا کنه اینم تموم میشه برانجه اما مطمئن نیست که همچین مرضی هیچ اثر و آرزه ای از خودش باقی نذاره اما معتقد اگه آدم واقعا نخواد این مرز رو بگیره خب نمیگیره بعد به طرف میزی که بطری مشروب روی اونه میره برانجه عقیده داره الکل بر برضد های مصری خیلی هم خوبه. بعد به یاد میاره که ژان هیچ وقت الکل نمی‌خورد یا حداقل اینطور ادعا کرد. همین که برانژ گیلاسش رو می‌نوشه سرفه میکنه. باز مسترب میشه. می‌پرسه که آیا صرفهش بشری بود یا مثلاً کرگدنی. دودار میگه سؤال‌های برانژه دیگه از این تر نمیتونست باشه و بهش توصیه میکنه که بهترین وسیله دفاع در مقابل این واقعه اراده است، نه هیچ چیز دیگه. دودار از برانژه میخواد که یکم بره بیرون هوا بخوره تا افکار سیاه و منفی از کلش بیرون بره برانژه اما دلش نمیخواد میگه چشم من فقط اونا رو میبینه دودار میگه اگه بهشون کاری نداشته باشی کاملا تو رو نادیده میگیرن در واقع زیاد هم موزی نیستند حتی تا حدودی ذاتم بی گناه هم هستند یه نوع سادگی دارن از اینها گذشته من خودم پای پیاده تموم خیابون اومدم پیش تو. باید جریان و یکم شوخی گرفت باید یه خورد بود برانجه جواب میده من خودم رو در تمام مسائلی که پیش میاد سهیم حس میکنم من نمیتونم بی تفاوت بمونم اگه این واقعه یه جای دیگه اتفاق افتاده بود مثلا توی مملکت دیگه اون وقت آدم میتونست با خیال راحت راجع بهش بحث کنه اون وقت خیلی جالب و هیجان انگیز و آموزنده میشد ولی وقتی خود توی واقعه گیر توی کردی، اون وقت نمیتونی خودت رو مستقیم سهم حس نکنی. آدم سختتر از اون قافلگیر شده که بتونه خون سردی خودش رو حفظ کنه. من قافلگیر شدم. دودار میگه منم قافلگیر شدم. ولی حالا دارم عادت میکنم. برانجه میگه فکر نمیکنی این تأصف آوره. دودار باز میگه فکر نکن از ته قلب از کرگدنها جانب داری میکنم که یک مرتبه سر و صدای کرگدنها بلند میشه. برانژه از جا میپره. میگه شبها از فکرشون خوابش نمیبره و فقط روزها از زور خستگی چشماش رو هم میفته. اگرم قرص آور بخوره فقط کابوس میبینه. دودار میگه پس قضیه رو بپذیر و ازش بگذر و اینقدر خودتو شکنجه نکن. اما برانژه میگه این تن دادن به تقدیر و قضاست در حالی که ریشه فساد رو باید از بیخ کند. دودار از نظرش این حرفا توخالیه میگه اصلا میشه دونست شر کجاست و خیر کجا؟ البته هرکس یه نظری داره اما اصل قضیه اینه که تو فقط به خاطر خودت میترسی ولی تو هیچ وقت کرگدن نمیشی چون اصلا استعدادش رو نداری برانجه عقیده داره که اگه هیئت حاکمه و همشهری ها همشون مثل دودار فکر کنن هرگز به فکر اقدام نمیافتند دودار برانجه رو دست میندازه که با این وز احتمالا میره و از کشورهای خارجی هم کمک میخواد. در حالی که این وز یک مسئله داخلیه و فقط به مملکت خودشونه که مربوط میشه. وقتی برانجه میگه که به همبستگی بستگی بین و مللی معتقده دودار بهش برچست میزنه که اون درست مثل دونکی شده. دنکی شد رو احتمالا میدونید روایت همراهی و سفر یک شوالیه است به نام شد، که زیادی خیال پردازه و خدف خودش رو هم نجات مردم میدونه مکالمه این و دودار با اصخاهی برانجه میره سمت اداره برانجه وقتی متوجه میشه پلکان رو دوباره دارن از چوب میسازند و نه سیمان میگه اینا همه پول دور ریختنه در حالی که اداره برای خرجای ضروری دیگه همیشه ادعا داره که بودجه نیست برانجه هنوز نمیدونه که قضیه بدتر از این هاست دودار براش تعریف میکنه که رئیسشون آقای شاهپرکم تبدیل به کرگدن شده. اینجا صدای کرگدن ها دوباره از دور میرسه. از نظر دودار ماجرا خیلی هم مضحکه. اما برانژه از 3 سال رو به آسمون بلند میکنه. دودار عقیده داره که سخت به نیت باطنی تصمیم آدم ها پی برد و شاهپرکم با اینکه موقعیتش درخشان بود، احتمالاً عقده های مخفی داشته. که جز با روانکاوی نمیشد ازشون سر در آورد. برانج که نمیتونه از نفع مالی یا اخلاقی کرگدن شدن سر در بیاره میگه دلش میخواد نظر بوتار همون همکار دیگهشون که توی پردای قبل بود رو درباره تصمیم رئیسشون بدونه. دودار خبر میده به ندرت آدمی به درموندگی بوتار دیده. برانج به نظرش میاد بوتار آدم فهمیده ایه. از قضاوت بدی که درباره بوتار کرده بود پشیمونه اما برعکس دودار از شکاکیت ها و و بدبینی بوتار خوشش نمیاد و منطق و قضاوت خودش رو قنیتر میدونه و میگه که بوتار زیادی احساساتی بود و دائم فرمولی حرف میزد و تکرار مکررات میکرد برانجه اما صد درصد با بوتار موافقه و رئیسشون رو که تسلیم شده محکوم میکنه دودار باش موافق نیست و از نظرش وقتی آدم میخواد چیزی رو بفهمه باید تا هاش بره. هر چیزی هم که در طبیعت بدتینت نیست و بدبخت اتفاقاً کسیه که در همه چیز بدیها رو ببینه و اضافه میکنه چه چیزی از کرگدن طبیعی تر میتونه وجود داشته باشه. برانجه میگه اما آدمی که کرگدن بشه بیچون و چرا غیر طبیعیه. دودار میگه از نظر فلسفه و طب. هیچ کس تا حالا نتونسته بفهمت طبیعی از کجا و غیر طبیعی بودن از کجا شروع میشه و در نهایت برانژه میگه که نه تحصیلاتی داره و نه در فلسفه اندازه کافی قوی هست که بتونه در بحث اندازه دودار مسلط ظاهر بشه و جواب بده ولی احساس میکنه که دودار داره اشتباه میکنه و برای همین سعی داره منتقدان رو پیدا کنه سر و صدای رفت و آمد کارگدانها که حالا بیشتر از همیشه انگار تمومی نداره. برانژه میره سمت پنجره که یکو کلاحسیری پارهی میبینه که روی شاخه یک کرگدنه. برانژه کلاحسیری رو به جا میاره و بعد در حالی که داره ناسزا میده به دودار میگه که منطقدان هم به ها کرگدنها پیوست. دودار به سمت پنجره میاد و وقتی میبینه تنها کرگدنی که کلاهدار داره منطقدانه میگه که اون اثری از شخصیت قبلی خودش رو به هر حال حفظ کرده و اگه از نظر برانژه اون یه متفکر اصیله که نباید میذاش کارش به اینجا برسه پس حتما قبل از انتخاب خوب و بدش رو سنگین کرده و همین جای فکر داره برانژه مستعصله نمیدونه دیگه به کی میتونه اعتماد کنه و به کی نمیتونه یه پنجره رو میبنده و به طرف پنجره دیگه میره که کرگدنها پایین به نظر دودار میاد که اونا دارن دور خونه میگردند و با هم بازی میکنند. همون موقع دیزی پشت در خونه برانجه میسته و با سبدی زیر وقل در میزنه. دودار میره و در رو باز میکنه و از دیدن دیزی اونم اونجا جا میخوره و هر چند بروز نمیده مشخصه که دل خوره. اگه یادتون باشه دودار و برانجه هر دو خاطرخواه دیزی بودن شاهپره یه نیم نگاهی بهش داشت. برانژه وقتی دیزی رو می‌بینه، بهش خبر میده که منطقدان کرگدن شده. دیزی خودش خبر داشت اما دودار و مخصوصا برانژه رو قافل گیر میکنه و میگه که همکار دیگه شون بوتار هم کرگدن شده. برانژه میگه ممکن نیست. شما حتما اشتباه میکنید. اون اعتراض کرده بود. همین الان دودار به هم گفت. دیزی اما بهش میگه که 24 ساعت بعد از تغییر حال آقای شاهپرک درست جلوی چشم خودش بوتار کردن میشه و آخرین حرف دوره آدمیزادیش هم این بود که باید با زمانه پیشرفت. دودار هم میگه که خب لا رو عوض کرده. هر آدمی حق داره تحول پیدا کنه. برانژه با خودش میگه درست که فکر میکنم میبینم تعجبی هم نداره. استحکامش ظاهری بود. دودار در حالی که به دیزی کمک میکنه تا سبد غذایی که در دست داره رو روی میز بذاره به برانژه میگه که بوتار همیشه از رئیسش پیروی کرده و همین عامل استثمار بود که نمیذاشت آشوب تلبیش رو کامل عیان کنه. گیزی بهشون میگه که حتی های بزرگی مثل اسخوف تبدیل به کرگدن شدن و با اینکه الان یه اقلیت بیشمارن اما روز به روز داره به تعدادشون اضافه میشه و پیش از اینکه همه غرق بشن باید کاری کرد. دودار هم میگه که ممکنه به های دیگه هم سرایت کنه. دیزی جای بشقاب های خونه رو میدونه و همین سوه زن دودار رو تحریک میکنه و نامیدش میکنه که از اینکه دیزی عشق و ای نسبت به خودش داشته باشه اما متفکرانه به خودش میگه شاید به تجربهش بیارزه. حالا صدای کرگدنها شنیده میشه و صدای شیپور و تبل. همگی میرن سمت پنجره جلوی. صدا صدای بلند خراب شدن دیواری به گوش میرسه و گرد و غبار کل صحنه رو میگیره. با محو شدن تدریجی گرد و غبار، برانجه به سمت مرکز آتشنشانی نشانی اشاره میکنه که کل دیوارهاش ریخته و مامورهای آتش نشانی فوج فوج تبدیل به کرگدن شدن و به خیابون اومدند. ولی تنها این نیست. صدای کرگدن از خونه های دیگه هم به گوش میرسه که دارن سعی میکنن خودشون رو هر چه سریعتر به بقیه کرگدن ها برسونند. اینجاست که متوجه میشن دیگه اکثریت باهاشون نیست. دیزی پیشنهاد میده که برای آروم شدن خودشون نهار بخورن و به طرف میز میره. دودار اما میگه که نمیخواد بقیه رو قائل بذاره. میخواد به وظیفش عمل کنه. برانجه میگه که ولی تو وظیفه حقیقی خودت رو نمیشناسی. وظیفه تو اینه که باهاشون مخالفت کنی با آگاهی و با شدت زیاد. دودار قبول نداره و میگه آگاهیش رو حفظ میکنه اما نباید قائلشون بذاره. و به سمت در میره و از نظر ناپدید میشه. یادتونه وقتی گفتش که به تجربه بش می‌ارزه. برانجه پشت سرش فریاد میکشه که برگرد. اما فایده نداره. دیزی و برانجه از پنجره جلویی به بیرون نگاه میکنند اما نمیتونن دودار رو بین بقیه کارگدندان‌ها تشخیص بدن. همه شکل همند برانجه به دیزی میگه که باید به زور نگهش می‌داشت. باید اصرار میکرد چون دودار دوستش داشت و حتما می‌خواسته کاری کنه که بتونه دیزی رو تحت تاثیر قرار بده. برانژه از دیزی میپرسه که وسوسه نشده دنبال دودار بره و دیزی انکار میکنه که نه نشده. حالا تو کوچه و خیابون تا چشم کار میکنه چیزی جز کرگدن دیده نمیشه کرگدنهای تکشاخ و شاخ و نصف نصف و بی هیچ علامت دیگه صدای گوشخراش اما آهنگین پای ها بلند میشه روی دیوار آخر صحنه از حالا تا پایان نمایش کله های نمادین کرگدن ها که لحظه به لحظه هم بیشتر میشه پیدا و ناپیدا میشن تا جایی که به کلی دیوار رو اشغال میکنند کله هایی که علا نهاد اهریمنیشون زیبا و زیباتر جلوه میکنند برانجه به دیزی اعتراف میکنه که دوستش داره و ازش میخواد که هیچ وقت ترکش نکنه برانجه پنجره جلوی صحنه و دیزی پنجره عقب صحنه رو میبنده و وسط صحنه به هم ملحق میشن همچنان که از صدای پای کارگدان شنیده میشه دیزی و برانجه شروع میکنن به گفتن و شنیدن حرفهای عاشقانه برانجه به دیزی میگه که اگه دودار نرفته بود همیشه بینشون مانع بود و خوشبختی توام با خودخواهیه بعد برانجه به یاد دوستش شان و رئیسش آقای شاه پرک میفته و از اینکه به اندازه کافی باهوشون دردی نکرده یا کاری نکرده که مانع کردن شدنشون بشه احساس گناه میکنه. دیزی بهش میگه که احساس گناه کردن علامت خطرناکی. برانجه قبول داره بعد به بیرون پنجره و به سمت دیوار عقب صحنه که کلهی کرگدنها ها روشه اشاره میکنه و میگه خیلی از اینها هم همین جوری شروع کردن با احساس گناه و آخرش هم اینطوری شدند. برای همین بدیزی حق میده و میگه که هیچ چیز نمیتونه مانع خوشبختیشون باشه. اما درست در همین لحظه صدای زنگ تلفن بلند میشه. دیزی که ترسیده از برانجه میخواد که جواب نده اما برانجه میگه شاید آقای شاپرک باشه یا جان. شاید دودار باشه یا بوتار که میخوان خبر بدن از تصمیمشون برگشتن مگه تو خودت نگفتی که تصمیم اونا ممکنه یه شیفتگی موقتی باشه؟ دیزی اما جواب میده که گمون نمیکنم، نمیتونن به این زودی عقیده عوض کنند. وقت فکر کردن نداشتند. باید تا آخرین مرحله تجربهشون پیش برن. تلفن مجددا زنگ میخوره و برنجه که این بار فکر میکنه مقامات رسمییم که ازشون کمک میخوان گوشی رو برمیداره. از پشت تلفن اما فقط صدای کرگدن شنیده میشه. دیزی با ترس گوشی رو میذاره و میگه، دارن ازشون انتقام میگیرن بعد دوباره صدای زنگ تلفن بلند میشه دیزی میگه پریزو بکش و وقتی میبینه برانجه از ترس شرکت تلفن این کارو نمیکنه خودش دست به کار میشه برانجه به طرف رادیو میرس رادیو هم فقط صدای کر میاد برانجه فکرشو نمیکرد که قضیه تا این حد جدی بشه دیزی در حالی که از نگرانی به خودش می درزه از پنجره به بیرون نگاه میکنه همه جا تا چشم کار میکنه کرگدنه حتی مقامات رسمی هم انگار به کرگدن تبدیل شدند دیزی میگه دیگه هیچ جا هیچ نیست برانجه میگه ما تنهاییم ما تنها موندیم دیزی هم میگه این همون چیزیه که خودت خواستی از هر طرف صدای کرگدن میاد همین موقع یه گچ از سقف میفته همسایه های طبقه بالا هم تبدیل به کرگدن شدن کم کم سر و صداها خفیف میشن و تبدیل میشن به موزیک صحنه بعد دیزی هیچ حالش خوش نیست میگه شاید تقصیر خود ماست برانجه سعی داره حارومش کنه بهش میگه احساس گناه خطرناکه ما باید زندگی خودمونو بکنیم و خوشبخت باشیم پارچه رو دور پیشونی دیزی میبنده و از میزان اشق و علاقهش به دیزی میگه دیزی پارچه رو بر و میگه دیگه کاری از ما بر نمیاد ما نمیتونیم شفاشون بدیم باید باهاشون کنار بیایم. باید سعی کنیم روحیشون رو بشناسیم و زبانشون رو یاد بگیریم برانج ولی موافق نید سعی میکنه به دیزی روحیه بده بهش میگه که تو از من قوی تری نمیخوای تحت تاثیر قرار بگیری و منم به خاطر بهت احترام میذارم. اما این حرفها هیچ کدوم کمکی به حال دیزی نمی کند برانجه میگه ما میتونیم یک کاری کنیم ما بچه دار میشیم بچه همونم بچه دار میشند وقت زیادی میبره اما همین کار میتونه بشریت رو دوباره احیا کنه ما آدم و حوا میشیم بعد همه چی خودش درست میشه اونم با زمان فقط صبر و حوصله میخواد دیزی میگه به چه دردی میخوره من نمیخوام بچه دار بشم اصلا برای چی باید دنیا رو نجات بدیم؟ این ماییم که نیاز داریم نجاتمون بدن شاید ما غیر طبیعی هستیم از قماش ما کسی دیگه ای رو سراغ داری؟ برانجه برا شفته میشه به دیزی میگه که داره پرتوبلا میگه و دلش نمیخواد همچین حرفایی رو از دهن اون بشنبه از اطراف گله های کرگدن میگذرن دیزی ادامه میده میبینی آدم ها اینان قیاف های خو به نظر هم دیوانه نمیرسن. خیلی هم طبیعیان، و لابط حق داشتن. برانجه معیوسانه میگه که این ماییم که حق داریم دیزی باور کن. دیزی اما نظرش اینه که حق مطلق وجود نداره. حق با دنیاست و نه خودش یا برانجه. برانجه سعی میکنه با حرف زدن از عشق و تفاهم دیزی رو متقاعد کنه. از عمق دوست داشتنش بهش میگه ولی خب دیزی این حرفا رو قبول نداره میگه من کم کم از اون چه تو اسمشو عشق گذاشتی خجالت میکشم این احساس بیمار این ضعف بین مرد و زن این احساس اصلا با اون شور و نیروی فوقلادهی که از این موجودات اطرافمون بروز میکنه قابل مقایسه نیست برانجه بهش میگه نیرو تو هم دیگه نیرو میخوای بیا اینم نیرو من ناگهان کشیده ای توی صورتش میزنه. دیزی ناباورانه روی صندلی می‌شینه برانژه که نمی‌دونه چطور اختیارش رو از دست داده بود از دیزی می کنه و بهش میگه که افسوس ما در همین چند لحظه 25 سال زندگی زناشویی رو گذروندیم دیزی ها رو قوی‌تر میدونه و در این حال دلش به حال می می‌سوزه و بهش میگه که تا آخر همراه برانژه مقاومت میکنه. اما چیزی نمیگذره که سر و صدای آواز کرگدن ها بلند میشه. دیزی از رقص و شادی کرگدن ها به وجل میاد و شروع میکنه به تعریف کردن ازشون. میگه که اونا خوشگلن و دلش نمیخواد کسی بدشون رو بگه چون ناراحتش میکنه. و از برانژه که میگه اونا زشتن میخواد که حسادت نکنه. برانجه میگه بیبینم که عقیده ما مخالف همدیگه است. پس بهتر اصلا بحث نکنیم. دیزی هم در حالی که میگه زندگی مشترک دیگه ممکن نیست و چندان هم چنگی به دل نمیزنه به سمت در میره. این در حالیه که برانجه همون موقع داره خودش رو در آینه نگاه میکنه و قیافش رو با ها مقایسه میکنه. بنابراین متوجه پایین رفتن دیزی از پلکان نمیشه وقتی برمیگرده که دیگه خیلی دیر شده. رانجه ناباورانه به سمت در میرس بالای پلکان صداش میزنه ولی دیگه فایده ای نداره. به داخل اتاق برمیگرده. میگه مسلما دیگه ما با هم نمیساختیم. یه زوج از هم جدا. ولی اون نباید بدون اینکه توضیحی بده همینجور میذاشت و میرفت. حالا من تنهای تنهام. و بعد در رو با دقت قفل میکنه. و به این ترتیب آخرین مفهوم بشری یعنی عشق در اینجا شکست میخوره برانجه در حالی که پنجره رو میبنده به گله کرگدن ها میگه که دنبال روشون نمیشه همونی هست که واقعی میمونه وقتی میشینه دوباره حس عذاب وجدان از اینکه دیزی رفته و نمیتونه از هیچ کسی کمک بگیره تا نجاتش بده میاد سراغش صدای کرگدن ها باز به گوش میرسه برانجه پنبهی تو گوشاش میذاره و شروع میکنه به صحبت کردن با خودش در آینه. میگه اول از همه باید متقاعدشون بکنی اما برانژه حتی نمیدونه که اصلا میشه اونها رو برگردوند به خودش میگه که اول باید باهاشون حرف بزنه باید زبونشون رو یاد بگیره میگه زبون من چیه؟ یعنی این زبان فرانسه است خودم میفهمم چی میگم برانجه به وسط اتاق میره و میگه اگه همونطوری که دیزی گفت اونها حق داشته باشن چی؟ باز میره سمت آینه و میگه ولی آدم زشت نیست و به صورت خودش دست میکشه یک دفعه چهرش به نظر خودش غریب میاد میخواد بدون شبیه چیه و برای همین چند تا عکس از گنجه بیرون میاره از خودش میپرسه که این آدم ها کی هستند تا اینکه که از گنجه بیرون میاره و با نگاه کردن بهش خودش رو میشناسه. تابله رو کنار گلهی روی دیوار آویزون میکنه. تابلوی یه پیر مرد و پیر زن رو هم آویزون میکنه ولی بعد ازش خوششون نمیاد و میگه من خوشگل نیستم. و تابلوها رو میکنه و پاره میکنه. دلش میخواد شاخ داشته باشه تا مثل کرگدن ها زیبا بشه و دیگه از قیافه خودش و پیشونی و خطهای افتاده روی صورتش، خجالت نکشه از چولی پوست تنش ناراحته میگه کاش پوستم مثل کریدن ها زبر بود و رنگش هم مثل اونا سبز بود سعی میکنه صداشون رو تقلید کنه بر بر بر تلاشش رو میکنه ولی فایده ای نداره وجدانش ناراحته میگه وای به روزگار کسی که بخواد اصالتش رو حفظ کنه برانجه اما ناگهان از جا میپره میگه که باشه به درک در مقابل همه از خودم دفاع میکنم حالا دنبال توفنگش میگرده و بعد به طرف دیوار صحنه که کله کرگدنها روشه فریاد میزنه در مقابل همه از خودم دفاع میکنم در مقابل همه من آخرین آدمم و تا آخر هم آدم میمونم من تسلیم نمیشم. چیزی که شنیدید نمایشنامه کرگدن اثر مشهور اوژن یونسکو بود این نمایشنامه سال 1959 نوشته شد وقتی یونسکو وارد 50 سالگی شده بود و 15 سال هم از جنگ جهانی دوم میگذشت. یک سال بعد نمایشنامه در آلمان اجرا میشه یعنی 15 روز قبل از افتتاحش در پاریس و جالب اینجاست که یونسکو در گفت گوش با دانشگاه تهران میگه که آلمانی‌ها تصویر خودشون رو در کرگدن دیدند و اعتراف هم کردن که دقیقا به همین شکل بود که کرگدن شدند و به صورت آدم نازی در اومدند همینطور که میشه حد زد حوادث جنگ جهانی دوم و روحیه مردم طی جنگ و بعد از اون در نمایشنامه منعکس شده مثلا دیالوک های بیمنی و بی و ته یا بیهودهی که مردم دارند میتونه وضعیت به هم ریخته جامعه رو نشون بده تو این نمایشنامه همونطور که احتمالا متوجه شدید فکری و حتی مفهوم عشق به دیگری شکست میخوره و تنها چیزی که باقی میمونه عشق بخیشتنه این که دانش به تنهایی کاری از دستش ساخته نیست و باید برای هویت و فکر کردن هم ارزش قائل شد البته آگاهی هم مهمه اما باز در کنار فکر کردن به اون آگاهیه به دست اومده از نظر یونسکو وقتی مقررات و خیلی چیزهای دیگر رو بیچون و چرا بپذیریم باعث میشه فکرمون رو به کار نندازیم و مدام طبق الگوهای داده شده حرف بزنیم نه طبق چیزی که خودمون عمیقا باورش داریم و اصالت داره چنین آدمی تبدیل میشه به یه آدم بیهوفیت یونسکو عقیده داره که لازمه فکر کردن خلوت کردن آدم با خودشه برای همین هم هست که اولین کسی که کرگدن میشه یک کارمنده که اینجا نماد بله قربانگو بودن و اطاعت بیچون و چراست یا وقتی رئیسشون آقای شاهپرگ یا منتقدان کرگدن میشن اونم به عنوان افراد مثلا معتبر جامعه بقیه هم کم کم این حق رو به خودشون میدن که حالا که اونا کرگدن شدن چرا ما نشیم و حتما کار درست همینه چیز بامزه‌ای که هست اینه که وقتی رادیوی ملی ایران از یونسکو میپرسه که آیا خودش تو این نمایش نام شخصیت برانج است میگه که مدتیه داره به این سوال فکر میکنه. بعد به شوخی جواب میده من همونقدر برانج هستم که فلوبر یا مادام بواری هستن گوستاف فلوبر نویسنده رمان معروفیه به اسم مادام بواری که همین کاراکتر مادام بواری توی رمان یه زن فاحش است بعد هم با تنز ادامه میده که وقتی همه میگن کرگدن دیگرانند خب من هم میگم کرگدن دیگرانند این نکته جالب رو هم به عنوان آخرین مطلب بگم که یونسکو در جمع مخاطبان ایرانیش با تواضع میگه که تعجب میکنه از اینکه این همه جمعیت اومدن به دیدنش چون وقتی ما ایرانی ها بزرگترین فلاسفه و شاعران رو داشتیم چی رو میخوایم از یونسکو یاد بگیریم بغیده داشت مشاهیر ایرانی اندیشه های بزرگتر و مهمتری نسبت به خودش داشتن شما هم برداشت خودتون و نظرتون رو در بری نمایشنامه ای کرگدن در بخش کامنت های کَس باکس یا زیر پست اینستاگرام پادکست بنویسید میتونیم اونجا بیشتر در बारे گفته گو کنیم یه بار دیگه از یسنا و شکیبا که کمک کردند این اپیزود به گوش شما برسه ممنونم از شما هم ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید من مهدی هستم و شما قسمت بیست و یکم پادکست الف رو شنیدید تا قسمت آینده سربلند و سالم باشید این نقش ماند از قلمت یادگار عمر میتناید